خدا دوستان من امروز یه مقداری کارم سخته به خاطر اینکه هم اولین سخنان هستم و هم اینکه بزرگان دیگهی قراره صحبت بکنن و اگر بخواهم مقایسه بکنین شاید یه ذر من رو کمتر ارزیابی بکنین. برای همین من از شما میخوام و موضوعی هم که میخوام ارائه بکنم خیلی نیاز به این داره که از نظر ذهنی منو همراهی بکنین یعنی من یه سری چیزها رو مرحله به مرحله توضیح میدم شما هم حتما زهرتون رو با این درگیر بکنین و خواهشم اینه که بین سخنرانی کار دیگه انجام ندین که من بتونم اون چیزایی که تو ذهن من منتقل بکنم بهتون من وحید عتاری هستم مسئول هسته های کارآفرینی مرکز کارافرینی دانشگاه شریف هستم این واقا من یه جمله ای از یه نفر شنیدم که برام خیلی شیرین و لذت بخش بود ایشون گفتم که سفرر در زمان کار سختی نیست کافیه که یه مقداری در مکان سفر کنین تا سفر در زمان اتفاق بیفته فرض کنین از اینجا پاشیم برین جنگل‌های آمازون تا هستیا داشته باشین که انگار دو هزار سال پیش دارین در همینجا زندگی می‌کنین سلام علان اوکی شد درسته برین جنگل‌های آمازون و ببینین که دو هزار سال پیش اینجا رو دارین زندگی می‌کنین و واقعیتش اینه که تو این دنیا جاهایی هستن که اگر ما به اونها مسافرت بکنیم یه مقداری انگار در به سمت جلو داریم حرکت می‌کنیم توی زمان. مثلا اگر مراکز فناوری مهم دنیا رو مسافرت کنیم اونجا با چیزهایی دارن کار می‌کنن که این اتفاق می‌افته. ممکنه ده سال بعد قرار ما از اون تکنولوژی استفاده بکنیم. و شانسی که من دارم، من الان یکی از این جاها هستم. یعنی داخل مرکز کارفرین شریف، مسئول قسمتی هستن که دانشجوهای شریف دارن روی محصولات تکنولوژی که این محصولات تکنولوژی ها یکی, یکی داریم پیش می‌ریم من می‌بینم که آره این تکنولوژی که داشت کار می‌کرد یک سال بعد توی فروشگاه آنلاین شما می‌تونید سفارش بدین استفاده بکنید محصولی که داشت کار می‌کرد چند سال بعد داخل خیابون‌ها شما ازش استفاده می‌کنید بریم سر بحث سفر در زمان اون سفر در زمانی که من منظورمه دقیقا همین جمله‌ای که خدمتتون گفتم نیست در واقع از نظر من راحل‌های مختلفی برای مسافرت در زمان وجود داره که یکیش می‌تونه همین جمله ساده ولی فلسفی باشه یکیش میتونه بحثایی باشه که انشتن مطرح کرده که ما وقتی داریم به آسمون نگاه میکنیم در واقع به گذشته آسمان داریم نگاه میکنیم نه به حالش ما داریم ستاره ها رو میبینیم در حال درخشیدن هستن که سالها پیش از بین رفتن و داریم به گذشته نگاه میکنیم الان اگر روی سیاره ای که 100 سال نوری از زمین فاصله داره بریم وایسیم 100 سال پیش زمین رو میتونیم نگاه بکنیم که چه اتفاقاتی داره میافته نه الان زمین رو ولی راه حلی که من میخوام خدمتتون بگم یعنی مد نظر منه اینا نیست یه تکنولوژی که شاید خیلی سریعتر از اینا این اتفاق بیفته برای اینکه بتونم راه حلمو بگم اول یه سناریو میگم به شما فرض کنه شما داخل یه مرکزی رفتین یه دستگاه یه ماشین زمان هست که یه تی سفایس دادن که بیان داخل این ماشین زمان بشینن و به گذشته سفر بکنن یه نفر اپراتور داره یه نفر میره پیشش میگه که من میخوام به 50 سال پیش مسافرت بکنم داخل دستگاه میره و ایشون یه حالا یه دکمه یا فشار میده ایشونو میفرسته به 50 سال گذشته از نظر شما ها کی میتونه این اتفاق بیفته ممکنه که بگین 10 سال دیگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه ممکنه یه سری از شما بگین هیچ‌وقت این اتفاق نمیتونه بیفته ولی واقعا با یه سری تکنولوژی ها ممکنه که 10 سال دیگه این سناریو شما قبول بکنین که این سناریو داره اتفاق میافته. منتها با یه مقداری با اون تصوری که شما دارین متفاوته. سر این یه مقدار امروز ما بحث میکنیم که این یه مقدار چقدره. میتونه اینقدر باشه، کم بشه، اینقدر باشه. که شما بگین که الان دستگاهی است که منو به گذشته میبره. برای اینکه وارد راه حلم بشم یه سال این روزه توی مرکز کارافینی از بچه هامی پرسیدم. دوست دارم شمام چندتا بهم جواب بدین. اینکه آخرین بار کی با مامانتون صحبت کردین واقعا میخوام تو سه نفر جواب بدم بهم شما کی صحبت کردین آخرین بار <تصفح> خدا رحمتش می کنم. کسی دیگه یه هست که یک ساعت پیش صحبت کرده باشه با مامانش شما کسی هست که ممکنه بگه من دیروز صحبت کردم ممکنه بگه من پ دقیقه پیش صحبت کردم و همین سوال من از دوستان اونجا می خب همین جواب رو میشنم ولی جالبه که این یه سری هستن که از شهرستان دارن تهران زندگی میکنن یعنی من خودم. خونه وادم تهران نیستم ولی ازم بپرسین که صحبت کردم ممکنو بگم دیروز صحبت کردم با مامانم چه اتفاقی داره میفته مگه غیر از اینه که من مامانم داره با یه گوشی صحبت میکنه و صدای اون رو اون دستگاه ضبط میکنه ضبط نمیکنه صدای اون رو به کد تبدیل میکنه میفرسته رو آنتن به یه سری سیستم واسط میشه بعد اون صدا میاد به گوشی من گوشی من همون صدا رو همون صدا رو نه یه صدای شبیه به صدای مامانم رو تولید میکنه و من اون صدا رو میشنوم و میگم با مامانم صحبت کردم یعنی در مورد صدا واقعا این اتفاق افتاده شما نمیگین من تلفنی با مامانم صحبت کردم میگین که من همه الان با مامانم صحبت کردم این تلفنی رو ازش حسب کردین در واقع مجازی داره اتفاق میفته که شما خیلی به واقعیت نزدیکش کردین در مورد صدا خیلی راحت این اتفاق افتاده در مورد تصویرها این اتفاق افتاده من دوستانی که اپلای کردن رفتن آمریکا زندگی میکنن اگه ازشون بپرسم مامانتون رو کی دیدیم ممکنه که بگه امروز باهاش صحبت کردم چون تلفنی صحبت کرده ولی بگه یک سال پیش که ایران بودم دیدمش یعنی هنوز باور نکرده که این تصویری که داره میبینه دقیقا تصویر مامانشه یه مثال خدمتتون میگم ببینیم که آیا میتونیم اینو پیشرفت بدیم این مقدار کم بکنیم یا نه فرض وافرمایید الان یه دوربین داخله نمیدونم مثلا میدان پارک لاله باشه که تصویر اون رو به صورت مصطح به من نشون بدین من میگم تصویر پارک لاله رو من میبینم تصویری که قبلا ضبط شده قبلا ضبط شده این رو من میتونم بهتر بکنم، کیفیتشو بهتر بکنم. کاری که در طی چند سال اخیر انجام دادن. تصویرو میتونم پانوراما بکنم، 360 درجه بکنم. فکر می کنم خیلی از شما با این درگیر بودین سالهای اخیر که یه سایتیو باز می‌کردین، یه تصویر 360 درجه که از یه جای زیارتی یا جای سیاحتی ضبط شده بود، با ما تکون می‌دادین و زوایای مختلفشو می‌دیدین. پس میتونم اینو 360 درجه بکنم. آیا لازمه رو صفحه کامپیوتر اینو ببینم؟ نه. ممکنه که من یه عینک سبادی روی چشم های نصف بشه همون اتفاقی که الان داره میافته. شما میتونید برین از یه سایت اینترنتی عک سبادی سفارش بدیم با قیمت 5 هزارارتم سر زارارتمان براتون بفرستن. میتونیم اون تصویر اونجا ببینین. تصویر خیلی واقعیتری ببینین تصویری که دو تا تصویر به چشم شما میده و خیلی واقعی ترش میکنه اون تصویر رو. پس من تصویر پارکلارر سبادی میتونم داشته باشم. و لازمم نیست که با مستکوش بدم. اون عینک سبادی توش، قسمتی داره که حرکات سر منو میتونه تشخیص بده و من سرمو تکون بدم اون تصویر سه‌بعدی رو 360 درجه رو قشنگ دور رو به من نشون بده لازم نیست که یه نقطه ثابتشو نگاه بکنم باز میتونم این تصویرو الان بهتر بکنم بازم جوابم مثبته آیا لازمه که رو عینک به این تصویر رو ببینم نه ممکنه که این عینک نباشه لنز باشه طور که الان خیلی خیلیاددار پتن ثبت می کنمم روش کار میکنن که روی صفحات خمیده مانیتور برای شما درست بکنن و تصویر نشون بدن. من میتونم تثیرر پارکلا رو روی لنز چشم هم ببینم بدون این اینکه عینک روی چشم زده باشم. یعنی همونطور که الان من ممکنه این کار کرده باشم شما شما متوجه نباشیم و من یه تصویر دیگه رو دارم می بینم الان پس من پارکلار رو میتونم روی لنز چشممان ببینم. آیا لازمه که این تصویر قبلا ثبت شده باشه توی پارک لاله نه اینترنت هست. ممکنه که اون تصویر الان هم اونجا دوربین باشه که من تصویر اون دوربین رو دارم می بینم یعنی تصویر زنده پارکلاله رو و میتونم اون تصویر رو حتی تکون بدم یعنی سر تکون بدم و ژیروسکوپ دیواسه من تشخیص بده که اون تصویر داره حرکت اون من دارم سر حرکت، سرم حرکت میکنه و اون دوربین رو حرکت و من قشنگ تصویر زنده پرکلاله رو داشته باشم اوکی پس من یه تصویر زنده از پارکلاله همین الان دارم. اگر تصویر زنده پارک لاله رو ازش نخوام و بخوام تصویر زنده همین جا رو به من بده ممکنه؟ از نظر من ممکنه اون دوربینه میتونه اونجا تا ایسالون نصب شده باشه و من الان تصویر اون رو ببینم و میتونم همونجا اونجا سرمون بچرخونم و اونور نگاه کنم یا اونور نگاه بکنم. یعنی تصویر خیلی واقعی شده برام. دیگه چطور میتونیم اینو پیشرفته ترش بکنیم؟ من تصویر پارک لاله رو به صورت زنده الان اینجا دارم. به نظرتون میتونم که یا تصویر اینجا رو دارم؟ به نظرتون م... لازمه که این تصویر تصویر همین الان باشه نمیتونه مال سه ماه پیش باشه من میتونم تصویر سه ماه پیش اینجا رو داشته باشم به خاطر اینکه من سه ماه پیش یا چند ماه پیش تو اون صندلی اونجا نشسته بودم و کلی این سالان رو نگاه کردم و چشم همه اینا رو میتونه ثبت بکنه سونی اوردی به اشت یه دوربینی معرفی کرد پتنتش رو ثبت کرد که روی چشم شما نصب میشه و کل تصویری که در طول روز شما دارین میبینین همه روز ذخیره میکنه من میتونستم پیش اون لنز رو داشته باشم و تصویر رو داشته باشم و الان اونا برگردم مرور بکنم و همه جای این سالن رو اون روز من نگاه کرده بودم اون تصویر رو نیاز نبود که من دقیقاً عین خودش مرور بکنم واسطش میتونستم وایسم جای اینکه اینور نگاه بکنم برگردم پشت سالن نگاه بکنم ببینم در سمای گذشته وقتی من داشتم اینجا سخنرانی گوش میکردم پشت سرم چه اتفاقی داشت میافتاد آیا این واقعا همون سفر در زمان نیست من برنامه‌گاشتم به چند ماه پیش اینجا و حتی توش کاریا کردم که اون زمان انجام نداده بودم اه. آرزوهای ما من فکر کنم یه سریشون اینجوری هستن یعنی برآورده میشن توسط علم و فناوری ولی دقیقاً نه اون شکلی که ما تو ذهنمون بود یه آرزوی دیرینه انسان پرواز بوده یعنی انسان دوست داشته پرواز کنه الان پرواز میکنه یا نه قبل از اینکه من بیام بالا مجری اومد بالا و گفت الان برآورده شده یعنی انسان داره پرواز میکنه. الان شما بپرسم انسان پرواز میکنه یا نه میگین آره ولی هیچکدومتون نمیدین که انسان بال میزنه پرواز میکنه همون تصوری که بچگی ها ما داشتیم من بالای پله واه میسادم میپریدم دست میزنه فکر میکردم اگر تمرین بکنم میتونم بپرم الان انسان داره میپره ولی وارد یه دستگاه میشه وارد یه هواپیما میشه نمیدونم کایت به خودش میبنده لباس پرنده به خودش میبنده که میپره پره بقیه هامون هم نکنه این مدلی هستن یعنی در سفر در زمان این مدلی که فکر می کردیم لازم نیست که اون دستگاه اینجا باشه یکی توش بشینه و به گذشته سفر بکنه ممکنه اون دستگاه اصلا اون مدلی نباشه داخل گوشیامون باشه همونطور که الان یه سری بازی پوکیمانگو رو نصب میکنن و داخل خیابون دارن دنبال یه سری ماجراجوریاتی که ما با چشم عادی نمیبینیم میگردن ممکنه که ما با گوشیامون پنج سال دیگه ده سال دیگه تصویر گذشته تهران رو بخوایم ببینیم من گوشیمو دست بگیرم و با دوربینش دارم تو خیابون قدم میزنم ولی چیزهایی رو دارم میبینم که 50 سال پیش تو این خیابون بودن نه الان درواقع من دارم تو گذشته تهران قدم میزنم مسافرت کردم به گذشته تهران نمی دان داستان شورووی آمریکا رو شنیدین در مورد فضا یا نه که میخواستن تو فضا با سر با تو فضا بنویسن من نمیدانم این داستان باقی ای یا نه ولی برای من نکته خوبی داره مشکلی که آمریکا روز ها توی سفر به فضا داشتن می گفتفتن خودکارمون نمی یعنی جو چون جاذبه نداره نمینویسه اومدن این مدلی حلش کردن آمریکا یه مئله برای خودشون تعریف کردن گفتن که ما چه خودکاری میتونیم داشته باشیم که تو فضا بنویسه. چند میلیون دلار پرخررج کردن و خودکاری اختراع کردن. و تولید کردن که بدون اجازه به میتونست جوهرش بنویسه تو فضا. یعنی با چند میلیون دلار اینو حلش کردن. ولی رسانه این کار نکردن. سوالو اینجوری تعریف نکردن که چرا که من یه خودکاری داشته باشم که بنویسه. گفتم مسئله من اینه که تو فضا بنویسم. و جوابش هم با یه مداد حل کردن گفتن اگه یه مداد داشته باشی میدونی به تو هر جاذبه ای با فرقی نداره رو سقف بنویسی هر جایی که دوست داشتی بنویسی یعنی مسئله رو یه جور دیگه تعریف کردن و یه جور دیگه حلش کردن میگن تعریف درست مسئله 80 درصد راه حله، کلیه، بیشتر از نصف راه حله ما قرار نیست که توی زمان اون مدلی که همیشه توی های قدیمی نه تو فیلم‌های جدید تو فیلم‌های جدید دیگه به این رسیدن که لازم نیست طرف غیب بشه بره تو گذشته ممکنه که اون ماشین اصلا نباشه و ممکنه که اون ماشین به اون شکل نباشه و من هیچ جایی اشاره ای نکردم که کسی که میره داخل اون ماشین میشینه غیب میشه ممکنه غیب نشه همینجا مونده ولی داره به گذشته سیر میکنه در واقع من این آدم رو به گذشته نبردم گذشته رو آوردم تو ذهن این شخص در مورد آرزوی دیگه انسان میخوام صحبت بکنم جاودانگی انسان همیشه دوست داشته که نمیره مرگ رو تجربه نکنه و زنده بمونه الان هم کسانی هستن که یا میگه نمیدونم منو منجمد کنین اون زمانی که این تکنولوژی به وجود اومد دوباره منو بیدار بکنین یا کسانی هستن مثل مدیر فنی گوگل رکورز وال که 20 سال فکر می‌کنم داره یه سری قرصای روزی 15 تا قرص مصرف میکنه که از لحاظ بیولوژیک پیری بدنش رو به تأخیر میندازه و ادعا می‌کنه که من توی این 20 سال 2 سال فقط پیر شدم اینا هم راه حلایی که برای جاودانگی است ولی باز چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم این نیست با یه سری تکنولوژی‌های دیگه میخوام صحبت بکنم فرض بکنین که من همون پارک لارا رو دارم و اونجا اون دوربینه هست و من میتونم اون دوربین رو شما بشنوین سرم، و تکون بدم، چشامو تکون بدم و اون دوربین حرکت بکنه. آیا میتونم اونجا دستم هم تکون بدم؟ اصلاً دستی دارم اونجا؟ ممکنه داشته باشم. یعنی ممکنه بازوی مکانیکی بهش وصل کرده باشن که به جای دستم من میتونه تکون بخوره. من دستمو تکون بدم و اون تکون بخوره. یا دستم دستمو تکون ندم، اعضای مصنوعی دارن روش کار میکنه. یعنی علاوه بر اینکه دارن میسازن، از مغز شما دارن یه سری پالسایی میگیرن که همون دستورات رو میگیره. صاحبای پیش پروجکتورهای سوئدی روی دو تا میمون امتحان کردن که قطع نخا بودن که پاشای از مغزشون گرفتن و پاشو منتقل کردن و پاشون رو تونستن تکوم بدن نیازی به این نبود که اصلا 10 دقیقه وایرلس این کارو کردن یعنی من از اینجا میتونم بازوی مکانیکی هم رو که داخل بدون پارک لاله وایساده تکوم بدم و بدون اینکه دست داشته باشم کسی که اونجا وایساده واقعا نمیدونه من دست دارم یا ندارم ممکنه که من دستی نداشته باشم، ممکنه پا همت تا نداشته باشم و اگه اینو همین مدلی ادامه بدیم ممکنه که من هیچ بدنی نداشته باشم که این کار بکنم، فقط مغزمه که از اینجا بهش دستور میده که این کار بکن. اینو خیلی بیشتر از این ادامه نمیدم که ممکنه مغزم هم نباشه، دیتای مغزم هم برای همین کافیه. نمیدونم تا حالا اتفاق افتاده یا نه که داشتیم با دوستتون چت میکردین، از پای کامپیوترش پا میشه میره ولی شما متوجه نمیشین که اون کسی که داره میده کیه داره جواب میده. ممکنه دوستتون مثلا هم اتاقی نشسته باشه جای اون داره بهتون جواب میده تو شما تا یه ساعت متوجه نشدین که دوستتون اونجا هست یا نه ممکنه اون کسی که ربات منو تو پارک لاله داره میبینه نمیدونه که وعیدتاری اینجا زنده است داره اونو تکون میده یا فقط مغزش زنده است یا فقط دیتای مغزش داره اینو میگم که یعنی جوابدانی غیر ممکن نیست حداقل با این روش میشه بهش رسید باید من, من یه سری چیزان در مورد ربات‌ها می‌خواستم بگم که اون رباتی که میگم داخل پارک لاله وا واقعیتش نه که تصوری که ما از ربات داشتیم درست نیست. ماها همیشه تصور می‌کردیم که اول ربات‌های انسان نما میان داخل خیابون، در حالی که الان یه سری ربات‌های کامل‌تر دیگه ای دارن میان تو خیابون. الان تو خیابون‌های آمریکا خودروهای خردروهای دارن تو خیابون رانندگی می‌کنن به صورت پایلوت هستن الان. ممکنه 5 سال دیگه هیچ راننده‌ای ممکنه که الان هم میتونه نداشته باشه ولی الان یه مهندس میذارن که فقط تست بکنه که این ماشین اتفاقی براش نیفته آمار تصادفشون هم خیلی پایین بوده یعنی ممکنه شما 5 سال دیگه 10 سال دیگه تو تهران با استفاده از اپلیکیشن اژانس سفارش بدیم و ماشین بدون راننده برای شما بیاد یعنی یه ربات کامل برای شما بیاد بیرون ما الان اگه با آمریکا شاید 10 سال دیگه وارد جنگ بشیم با سربازای آمریکایی جنگیم با رباتای آمریکایی جنگیم سربازی که 100 متر اون 100 کیلومتر اون ورتره مزن نشسته رباتو داره کنترل میکنه که داره با ما می جنگه. و ما هیچ تصوری از این نداریم یعنی ربات کشته بشه ممکنه در جلده یه ربات دیگه همون سرباز دوباره بیاد با ما بجنگه ببخشید من این تمام رو زمین گذاشتم و خم میشم variedade شنه که پیشبینی آینده به این راحتی پذیر نیست یه دلیل اساسیش اینه که ما چیزهایی که هست رو الان داریم اکستند می کنیم داریم پیشرففت تر می کنیم که بر اساس اون آینده رو پیش بینی بکنیم مثلا من یه جای حرفها اشاره کردم به اینکه ممکنه شما با گوشی خودتون ده سال دیگه بخواین گذشته خیابان های تهران رو ببینین در حالی که واقعیتش اینه که ده سال دیگه گوشی نیست فون از این رفته در سال دیگه هیچ کدوم از ما های فون نداریم مگر اونایی که کسانی که الان 11 تا 0 دارن همونا میخوام اسفارت فون داشته باشن. گوشی مانیتورش رفته توی چشمان شما، رفته توی مغز شما، کیبوردش تبدیل شده به تشخیص صدای شما، تشخیص فکر شما و بقیه قسمتاش همش از هم جدا شده و وارد مغز شما شده. کسانی دارن روی این کار میکنن که انسان‌ها مثل ایلان ماسک، تسلا موتورز و اسپیسیکس که انسان‌ها رو کلونی درست بکنن، بین تا 6 سال دیگه از اینجا میلیون ها نفر انسان رو میخوان به مریخ ببرم و اونجا به صورت کلونی زندگی بکنن و کسانی مثل زاکربرگ دارن روی با خرید شرکت های مثل آکولوس دارن روی این کار میکنن که واقعیت مجازی و ذاکرربگ دو ماه پیشویی کنفرانس اولین مسئول واقعیت مجازیشون رو ارائه کرد که میتونستم با دوست، یعنی شما میتونستیم با دوستتون بشین یه جای شطرجی بازی کنین آواتار دوستتون و آواتار شما ن خودود شما و دوستتون من حرف هم میخواستم با این تمام کنم که ما جللو این تکنولوژی رو نمیتونیم بگیریم ولی به قول خوابان که می که پایتخت این قرن رو میخوام پیدا بکنم، و فتح بکنم و بیاندازم هان کجاست پایتخت این دو جای این قرن پر آشوب. قرن شکلک چهره برگذشته از مدار ماه لیک دور از قرار مهر قرنی که انسان از ماه گذشته ولی از خورشید و مهر و عشق و محبت دور شده امیدوارم که هر کدوم از این اتفاقات تو چه بازه زمانی هر بازه زمانی که اتفاق بیفته انسانیت از بین نره ما بتونیم به صورت انسان زندگی بکنیم خیلی ممنون که گوش کردید